اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم به نام بخشنده بخشایشگر الف لام م ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین آن کتاب با است که شک در آن راه ندارد و مایه هدایت پرهیزکاران است الذین یؤمنون بالغیب و یقمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون کاران کسانی هستند که به غیب آنچه از حس پوشیده و پنهان است ایمان می آورند و نماز را بر می دارند و از تمام نعمتها و مواهبی که به آنان روزی داده انفاق می کنند.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 و به رستاخیز یقین دارند و هم المفلحون آنان بر طریق هدایت پروردگارشانند و آنان رستگارانند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 ختم الله علی قلوبهم و علی سمعیهم و علی ابصاریهم و لهم عذاب عظیم خدا بر دلها و گوشهای آنان مهر نهاده و بر چشمهایشان پردهای ای شده و عذاب بزرگی در انتظار آنهاست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 یخادعون الله والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم میخواهند خدا و مؤمنان را فریب دهند در حالی که جزء خودشان را فریب نمیدهند اما نمیفهم بقولو قلوبهم مرض فزادهم الله ولهم عذاب بما كانوا در دلهای آنان یک نوع بیماری است خداوند بر بیماری آنان افزوده و به خاطر دروغ هایی که میگفتند عذاب به دردناکی در انتظار آنهاست. وإذا اذا قیل لهم لا تفسدو فی الارض قالو انما نحن مصلحون و هنگامی که به آنان گفته شود در زمین فساد نکنید میگویند ما فقط اصلاح کننده ایم علا انهم هم المفسدون ولیکن لا يشعرون آگاه باشید اینها همان مفسدانند، اند بلی نمیفهم و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا قالوا انؤمن کما آمن السفهاء الا این و هنگامی که به آنان گفته شود، همانند سایر مردم ایمان بیاورید، میگویند، آیا همچون ابلهان ایمان بیاوریم؟ بدانید، اینها همان ابلهانند ولی نمیدانند. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا قالوا إننا معكم إنما نحن مستهزئون و هنگامی که افراد با ایمان را ملاقات میکنند می گویند ما ایمان آورده ایم ولی هنگامی که با شیطان‌های خود خلوت می‌کنند می‌گویند ما با شما ایم ما فقط آنها را مسخره می‌کنیم الله و خداوند آنان را استهزا می‌کند و آنها را در توغیانشان نگه می‌دارد تا سرگردان شوند اولائك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين آنان کسانی هستند که هدایت را به گمراهی فروختند و این تجارت آنها سودی نداده و هدایت نیافته‌اند مثلهم منافقان الذي اسْتَوْقَدَ هستند که آتشی افروخته الله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 صمم بک منعمی فهم لا یرجعون آنها کران گندها و کورانند لذا از راه خطا باز نمیگردند گردند او كصيب من السماء فی ظلمات و رعد و برق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين یا همچون بارانی از آسمان که در شب تاریک همراه با رعد و برق و سائقه بر سر رهگذران ببارد آنها از ترس مرگ انگشتانشان را در گوشهای خود می‌گذارند تا صدای سائق را نشنوند و خداوند به کافران احاطه دارد و در قبض قدرت او هستند یكاد البرق یختف أبصارهم كلما اضاء لهم فیه و اذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصاریم این الله علا كل شیئین قدیر روشنائی خیره کننده برق نزدیک است چشمانشان را برو باید. هر زمان که برق جستن می کند و صفحه بیابان را برای آنها روشن می سازد چند گامی در پرتو آن راه میروند و چون خاموش میشود توقف می‌کنند و اگر خدا بخواهد گوش و چشم آنها را از بین میبرد چرا که خداوند بر هر چیز تواناست یا ایوهن ناس اعبدو ربکم الَّذِي خَلَقَكُم وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُم ای مردم پروردگار خود را پرستش کنید آنکس کس که شما و کسانی را که پیش از شما بودند آفرید تا پرهیزگار شدید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 و از آسمان آبی فرو فرستاد و به وسیله آن میوه ها را پرورش داد تا روزی شما باشد بنابراین برای خدا همتایانی قرار ندهید در حالی که میدانید هیچیک از آنها نه شما را آفریده اند و نه شما را روزی میده وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَّا نَزَّلَّا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا فأتو بِسُورَةٍ مِّمْ مِثْلِهِ وَادَعُوا شُهَدَاءَكُم مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ, إن كنتم صَادِقِينَ در آنچه بر بنده خود پیام بر نازل کرده ایم شک و تردید دارید دست کم یک سوره همانند آن بیاورید و گواهان خود را غیر خدا برای این کار فرا اگر راست میگوید فا لم تفعلوا ولن تفعلوا فتقون النار و وقودها الناس فَاتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَهُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ پس اگر چونین نکنید که هرگز نخواهید جرد از آتشی بترسید که هیزم آن بدنهای مردم گنهکار و سنگ هاست و برای کافران آمَنَ بِشُرَكَاءَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ الرِّزْقُ قَالُوا طوالو هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون به کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادهاند بشارت ده که باغهایی از بهشت برای آنهاست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 به و به و به خداوند از این که به موجودات ظاهرند کوچکی مانند پشه و حتی کمتر از آن مثال بزند شرم کند در این میان آنان که ایمان آورده اند می میدانند.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 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون, ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. أولئك هم الخاسرون خدا را پس از محکم ساختن آن می شکنند و پیوندهایی را که خدا دستور داده برقرار سازند قطع نموده و در روی زمین فساد میکنند. اینها زیانکارانند تکفرون بالله و کنتم امواتا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 قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انني اعلم ما لا تعلمون خاطر بیاور هنگامی را که پرورد گارت به فرشتگان گفت من در روج زمین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 ما تصبیح و حمد تو را به جا می آوریم و تو را تقدیس می کنیم پروردگار فرمود من حقایقی را می دانم که شما نمیدانید دانید و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم علی الملائکت فقال فقال انبیعونی بی اسمائی ها اولائی صادقین سپس علم اسما علم اسرار آفرینش و نامگذاری موجودات را همگی به آدم آموخت موخت بعد آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود اگر راست میگویید عسامی اینها را به من خبر دهید. قال سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك أنت العلم الحكيم. فرشتگان ارس کردند. منزهی تو ما چیزی جز آنچه به ما تعلیم داده ای نمیدانیم. تو دانا و می. قَالَ يَا آدَمُ أَنبِهِم بِأَسْمَائِهِم فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِم قَالَ أَلَمْ أَقُل لكم, لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ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 آنچرا شما آشکار می‌کنید و آنچرا پنهان می‌داشتید. و اذق الله الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين. بگات کن، هنگامی را که فرشتگان گفتیم برای آدم سجده و خضوع کنید همهگی سجده کردند جز ابلیس که سر باز زد و تکبر ورزید و از کافران شد و قلنا یا آدم اسكن انت و زوج وكل وكلا منها رغدا شئتما ولا تقربا هذه فتكونا من الظالمین. و گفتیم ای آدم تو با همسرت در بهشت سکونت کن و از نعمتهای آن از هر جا میخواهید خواهید را بخورید اما نزدیک این درخت نشوید که از ستمگران خواهید شد فأزل لهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقل لهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقرو ومتاع إل حن پس شیطان موجب لغزش آنها از بهشت شد و آنان را از آنچه در آن بودند بیرون کرد در این هنگام به آنها گفتیم همگی به زمین فرود آید در حالی که بعضی دشمن دیگری خواهید بود و برای شما در زمین تا مدت معینی قرارگاه و وسیله بهره برداری خواهد بود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 قل له بطوم منها جميعا فان ما مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا گفتیم هم همگی از آن فرودایید هرگاه هدایتی از طرف من برای شما آمد کسانی که از آن پیروی کنند نه ترسی بر آنهاست و نه غمگین شوند و کسانی که, که کافر شدند و آیات ما را دروغ پنداشتند اهل دوزخند و همیشه در آن خواهند بود. يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي بعهدی اوفی بعهدي اوفي بعهدكم وان يا فرزندان اي فرزندان اسرائيل نعمت به شما ارزانی داشتم به یاد آورید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 و به آنچه نازل کرده ام قرآن ایمان بیاورید که نشانه های آن با آنچه در کتاب های شماست مطابقت دارد و نخستین کافره به آن نواشید و آیات مرا به بهای ناچیزی نفروشید و تنها از من بترسید ولا تلبسو الحق بالباطل و الحق و تعلمون و حق را با باطل نیامیزید و حقیقت را با اینکه میدانید کتمان نکنید و اقیم الصلاه و اتو و مع و نماز را به دارید و زکات را بپردازید و همراه رکوع کنندگان رکوع کنید تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون آیا مردم را به نیکی دعوت میکنید اما خودتان را فراموش مینمایید با اینکه شما کتاب آسمانی را میخوانید آیا نمی اندیشید وستعين بصابی وصل وإنك كبير إلا على الخاشعين از صبر و نماز یاری جوید و این کار جز برای خاشعان ان گرامه. الَّذين يظنون أنهم ربهم أنهم إليه راجعون. آنها کسانی هستند که میدانند دیدار کننده پروردگار خیشند و به سوی او باز میگردند يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم و انني فضلتكم على العالمين اي بني اسرائيل که به شما ارزانی داشتم به خاطر بیاورید و نیز به یاد آورید که من شما را بر جهانیان برتری بخشیدم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يقبل منها يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ما جزوي بتفسيد مجازات دیگری را نمیپذیرد و نه از او شفاعت پذیرفته می شود و نه قرامت از او قبول خواهد شد و یاری می شود و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبیحون ابناءکم یذبیحون ابناءکم و یستحیون نساءکم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 و فرعونیان را غرق ساختیم در حالی که شما تماشا می کردید و از وعدنا موسیٰ اربعین لیلتا ثم اتخذتم العجل من بعدهی و ظالمون و به یاد آورید هنگامی را که با موسی چهل شب وعده گذاردیم و او برای گرفتن فرمانهای الهی به می آدگاه آمد سپس شما گو ساله را بعد از او معبود خود انتخاب نمودید در حالی که ستمکار بودید ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم سپس شما را بعد از آن بخشیدین شاید شکر این نعمت را به جا آورید و آتینا الكتاب الفرقان لعلكم تهتدون و نیز به خاطر آورید هنگامی را که به موسی کتاب و وسیله تشخیص حق از باطل را دادیم تا هدایت شدید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 و وإذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتی نرالله الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون و نیز به یاد آورید هنگامی را که گفتید ای موسی ما هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد مگر اینکه خدا را آشکارا با چشم خود ببینیم پس سائق شما را گرفت در حالی که تماشا می کردید من بعد سپس شما را پس از مرگتان حیات بخشیدیم شاید شکر نعمت او را به و ظلل عليكم الغمام وانزل عليكم المن و السلوه من طيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم را بر شما سعی قرار دادیم. و من شیره مخصوص و لذیذ درختان و سلوا مرغان مخصوص شبیه کبوتر را بر شما فرستادیم و گفتیم از نعمتهای پاکیزه ای که به شما روزی داده بخورید. ولی شما کفران کردید. آنها به ما ستم نکردند بلکه به خود ستم می نمودند. وإذ اذ قل دخول هذه القرية فكلوا منها حيث شئت مرغدو و دخول الباب سجدو وقولوا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم و المحسنين. و خاطر بیاورید زمانی را که گفتیم در این شهر بهیت المقدس وارد شوید. و از نعمتهای فراوان آن از هر جا می خواهید بخورید و از در معبد بیت المقدس با خضوع و خشوع وارد گردید و بگویید خداوندا گناهان ما را بریز تا خطاهای شما را ببخشید و به نیکو کاران پاداش بیشتری خواهیم داد. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُونَ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلَّا فَأَنْزَلَّا عَلَ الَّذِينَ ظَلَمُونَ رِجِزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اما افراد ستمگر این سخن را که به آنها گفته شده بود تغییر دادند لذا برست همگران در برابر این نافرمانی عذابی از آسمان فرستادیم و اید استسقا موسا لقومی فقل اغرب الحجر فانفجرت من هثنتا عشرت عینا قد علم كل اناس مشربهم و به یاد آورید زمانی را که موسی برای قوم خیش آب تنبید به او دستور دادیم عصای خود را بر آن سنگ مخصوص بزن ناگاه دوازده ده چشمه آب از آن جوشید آنگونه که هر یک از توایف دوازدهگانه بنی اسرائیل چشمه مخصوص خود را می و گفتیم از روزی های الهی بخورید و بیاشامید و در زمین فساد نکنید. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تبت الأرض من بق لها من بق لها وفومها وعدسها وبصلها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 ذلك بی كانوا کانو یکفرون الله و يقتلون و یقتلون النبیین بغیر الحق ذلك بما عصوا وكانوا و کانو و نیز به خاطر بیاورید زمانی را که گفتید ای موسا هرگز حاضر نیستیم به یک نوع قضا احتفا کنید از خدای خود بخواه که از آنچه زمین میرویاند از سبزیجات و خیار و سیر و عدس و پیازش برای ما فراهم سازد موسی گفت آیا قضای پستر را به جای قضای بهتر انتخاب میکنید؟ در شهری فرود فرودایید زیرا هرچه خواستید در آنجا برای شما هست و مهر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 إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصالحين من آمن من آمن بِاللهِ واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجورهم فلهم أجورهم عند ربهم ولا خوف عليهم هم يحزنون کسانی که به پیام بر اسلام ایمان آوردند و کسانی که به آین یهود گرویدند و نصارا و صابئان پیروان یحیی هرگاه به خدا و روز رستاخیز ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند پاداششان نزد پروردگارشان مسلم است و هیچگونه ترس و اندوهی برای آنها نیست و از اخذنا میثاقكم و رفعنا فوقكم اطور خذو ما آتيناكم بقوت و اذکرو, و اذکرو ما فیه لعلكم تتقون. و بیاد آورید زمانی را که از شما پیمان گرفتیم و کوه تور را بالای سر شما قرار دادیم و به شما گفتیم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 پس شما پس از این رویگردان شدید و اگر فضل و رحمت خداوند بر شما نبود از زیانکاران بودید و لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرده خاسئين به طور قطع از حال کسانی از شما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 از این که از جاهلان باشم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول إنها بقره لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون گفتند پس از خدای خود بخواه که برای ما روشن کند این ما گا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 قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها فاقع لونها تسر الناظرين گفتند از پروردگار خود بخواه که برای ما روشن سازم رنگ آن چگونه باشد گفت خداوند میگوید گابی باشد زرد یک دست که بینندگان را شاد و مصرور سازد قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقر تشابه علينا واننا واننا شاء الله لمهتدون. گفتند از خدایت بخواه برای ما روشن کند که چگونه گاوی باید باشد زیرا این گاو برای ما مبهم شده و اگر خدا بخواهد ما هدایت خواهیم شد قال انهو یقول انها بقرة لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرف ولا تسقي الحرف مسلمت لا شیط فیها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 سپس درباره قاتل او به نزا پرداختید و خداوند آن چه را مخفی می‌داشدید آشکار می‌سازد. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ پس فرمودیم پاره‌ای از آن گاب سربریده را به آن مقتول بزنید زنده شود شد این گونه خدا مردگان را زنده میکند و آیات خود را به شما مینمایاند باشد که بینید شودما قسد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه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 سپس دلهای شما بعد از این واقعه سخت شد همچون سنگ یا سخت تر چرا که پاری از سندها می شکافند و از آن نهرها جاری می شود و پاری از آنها شکاف بر دارد و آب از آن تراوش می کند و پاری از خوف خدا از فراز کوه به زیر می افتد. اما دلهای شما نه از خوف خدا میتپد و نه سرچشمه علم و دانش و عواطف انسانیست و خداوند از اعمال شما غافل نیست افت طمعون این یؤمنون لکم و قد فریق منهم یسمعون كلام الله ثم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 و هنگامی که مؤمنان را ملاقات کنند میگویند ایمان آورده این ولی هنگامی که با یکدیگر خلوت می میکنند میگویند چرا مطالبی را که خداوند درباره صفات پیامبر اسلام برای شما بیان کرد به مسلمانان بازگو می کنید تا روز رستاخیز در پیشگاه خدا بر ضد شما به آن استدلال کنند آیا نمیفهمید او يعلمون أنَّ الله يعلم ما يوسمون وما يعلنون. آیا اینها نمیدارند خداوند آنچه پنهان میدارند یا آشکار می کنند میدانند ومننهمميون لا يعلمون الكتاب إلا آممانية وإنهم إلا يظنون و پاری از آنان عوامانی هستند که کتاب خدا را جز یک مشت خیالات و آرزوها نمی‌دانند و تنها به پندارهایشان دل بستند فویل للذین يكتبون الكتاب بایدیهم ثم يقولون هذا من عند الله لیشترو به لیشترو به ثمنا قلیلا فویل لهم مما كتبت ایدیهم وویل لهم مما یکسبون پس وای بر آنها که نوشته ای با دست خود می نویسند سپس میگویند این از طرف خداست تا آن را به بهای کمی بفروشند پس وای بر آنها از آن چه با دست خود نوشتند و وای بر آنان از آن چه از این راه به دست میآورند و قالوا لن تمسن النار الا اياما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون علی الله ما لا تعلمون و گفتند هرگز آتش دوزخ جز چند روزی به ما نخواهد رسید بگو آیا پیمانی از خدا گرفته اید و خداوند هرگز از پیمانش تخلف نمی یا چیزی را که نمیدانید به خدا نسبت می‌دهید بلا من کسب زیعتا و به خطیعته فالائک فالائک اصحاب النار هم فیها خالدون آره، کسانی که مرتکب گناه شوند و آثار گناه سراسر وجودشان را بپوشاند آنها،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 وَإِذْ أَخَذْنَا ميثاق بني إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى و ذی القربا والیتاما والمساکین و قولو لنناس حسنا و اقیم الصلاة و آتو الزکاة ثم توليتم الا قليلا منكم و معرضون و بیاد آورید زمانی را که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم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 و اذآخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماأكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. و هنگامی را که از شما پیمان گرفتیم که خونه همراه نریزید و یکدیگر را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 فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون اما این شما هستی که یک را میکشید و جمعی از خودتان را از سرزمینشان بیرون می‌کنید و در این گناه و تجاوز به یکدیگر کمک می‌نمایید در حالی که اگر بعضی از آنها به صورت اسیران نزد شما آیند فدیه می‌دهید و آنان را آزاد می‌سازید با اینکه بیرون ساختن آنان بر شما حرام بود آیا به بعضی از دستورات کتاب آسمانی ایمان می و به بعضی کافر می شوید؟ برای کسی از شما که این عمل تبعیض در میان احکام و قوانین الهی را انجام دهد جز رسوایی در این جهان چیزی نخواهد بود و روز رستاخیز به شدید ترین عذاب ها گرفتار می شوند و خداوند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 و کسی آنها را یاری نخواهند جار و لقد آتینا موسا الكتاب و من بعده برسل و آتینا عیس بن مريم بروح القدس اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَا اَنفُسُكُمْ استكبرتم فَفَرِيقًا فَفَرِيقًا كَذَّبِتُمْ وَفَرِيقًا تَقُتُلُونَ ما به موسا کتاب تورات دادیم و بعد ازو پیامبرانی پشت سر هم فرستادیم و به حساب مریم دلایل روشن دادیم و او را به وسیله روح القدس تأیید کردیم آیا چنین نیست که هر زمان پیامبری چیزی برخلاف هوای نفس شما آورد در برابر او تکبر کردید پس ادعای را تکذیب کرده و جمعی را به غضب رساندید و قلوبنا غلف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 قل فلم تقتلون انبیاء الله من قبل این كنتم مؤمنین و هنگامی که به آنها گفته شود به آنکه خداوند نازل فرموده ایمان بیاورید میگویند ما به چیزی ایمان میآوریم آوریم که بر خود ما نازل شده است و به غیر آن کافر میشوند.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 وَإذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّتِهِ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِسَمَاءٍ يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ و به یاد آورید زمانی را که از شما پیمان گرفتیم و کوه تور را بالای سر شما برافراشتیم و گفتیم این دستوراتی را که به شما داده ایم محکم بگیرید و درست بشنوید آنها گفتند شنیدیم ولی مخالفت کردیم و دلهای آنها بر اثر کفشان با محبت گوساله آمیخته شد بگو ایمان شما چه فرمان بری به شما میدهد اگر ایمان دارید قل إن کانت لكم الدار الاخرت عند الله خالصة من دون الناس فتمنه الموت این کنتم صادقین بگو اگر آنچنان که مدعی هستید سرای آخرت در نزد خدا مخصوص شماست نساین مردم پس آرزوی مرگ کنید اگر راست میگوید ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین ولی آنها خاطر اعمال بدی که پیش از خود فرستادند هرگز آرزوی مرگ نخواهند کرد و خداوند از ستمگران آگاه است ولَجِدْنَ لَهُمْ أَحْرَصًا عَلَى حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَدُّ أَحَدِهِمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ العذاب.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 و هدایت و بشارت است برای مؤمنان من کان عدو لله و ورسله و رسله و جبریل و میکال فإن الله فإن الله عدو للكافرین کسی که دشمن خدا و فرشتگان و رسولان او و جبریل و میکائیل باشد کافر است و خداوند دشمن کافران است ولقد انزلنا اليك ايات بيينات وما يكثر بها الا الفاسقون ما نشانهای روشنی برای تو فرستادیم و جز فاسقان کسی به آنها کفر نمی او و آیا عاهدوا عهدا منهم بل لا و آیا چنین نیست که هر بار آنها یهود پیمانی با خدا و پیامبر بستند جمعی از ایشان آن را دور افت و مخالفت کردند آری بیشتر آنان ایمان نمی آورند. ولما جاءهم رسول من عين الله مصدق لما معهم نبذ فريق نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم كأنهم لا يعلمون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 وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس يعلمون الناس السحر وما أُنزل على الملَكين ببابله روت وما روت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر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 وقاد عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ ف الاخرات من خولاو ولا بسم ش و به فسوم لوکن علمون و یهود از آنکه شیاطین در عصر سلیمان بر مردم می خواندند پیوی کردند هرگز کافر نشد ولی شیاطین کفر ورزیدند و به مردم سحر آموختند و نیز یهود از آنچه بر دو فرشته بابل هاروت و ماروت نازل شد پیروی کردند و به هیچ چیز چیزی یاد نمیدادند مگر اینکه از پیش به او می گفتند ما وسیله آزمایشیم کافر نشو ولی آنها از آن دو فرشته مطالبی را می‌آموختند که بتوانند به وسیله آن میان مرد و همسرش جدایی بیافکنند ولی هیچگاه نمیتوانند بدون اجازه خداوند به انسانی زیان برسانند آنها قسمتهایی را فرامی گرفتند که به آنان زیان میرسانید و نفعی نمیداد و مسلما میدانستند هر کسی خریدار این گونه باشد در آخرت بحره این نخواهد داشت وچه زشت و ناپسند بود آنچه خود را به آن فروختند اگر میدانستند ولو من عند الله خير لو كانوا يعلمون و اگر آنها ایمان میآوردند و پرهیزگاری پیشه میکردند. پاداشی که نزد خداست برای آنان بهتر بود اگر آگاهی داشتند. یا ایوها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا و قولوا و اسمعوا عذاب ای افراد با ایمان نگویید راعنا بلکه بگویید انظرنا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 هم تریدون ان تسألو رسولكم کما سئل موسى من قبل و من يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل آیا میخواهید از پیانبر خود همان تقاضای نامعقولی را بکنید که پیش از این از موسی کردند؟ کسی که کفر را به جای ایمان بپذیرد از راه مستقیم گمراه شده است ود من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانکم کفارا کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فعفو فاعفوا واصفحوا الله بأمره. إن الله على كل شيء قدير. بسیاری از اهل کتاب از روی حسد که در وجود آنها ریشه دوانده آرزو میکردند شما را بعد از اسلام و ایمان به حال کفر بازگردانند با اینکه حق برای آنها کاملا روشن شده است شما آنها را عفو کنید و گذشت نمایید تا خداوند فرمان خودش را بفرستد خداوند بر هر چیزی تواناست و اقیم الصلاة و آت الزکاة و ما تقدمو لأنفسكم من خیر تجدوه عند الله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 پاداش او نزد پروردگارش ثابت است نه ترسی بر آنهاست و نه غمگین میشوند وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذین لا يعلمون مثل قولهم فالله یحكم بینهم یوم القیامة فیما كانوا فیه یختلفون یهودیان گفتند مسیحیان هیچ موقعیتی نزد خدا ندارند و مسیحیان نیز گفتند یهودیان هیچ موقعیتی ندارند در حالی که هر دو دسته کتاب آسمانی را می‌خوانند افراد نادان دیگر همچون مشرکان نیز سخنی همانند سخن آنها داشتند خداوند روز قیامت درباره آنچه در آن اختلاف داشتند داوری می‌کند و من اظلم ممن من منع مساجد الله ان اسمه و سعا خرابها اولئی کما كان لهم ایدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخرت عذاب عظیم چیست ستم کارتر از آن کس که از بردن نام خدا در مساجد او جلوگیری گیری کرده و سعی در ویرانی آنها نمود خوجیسته نیست آنان جز با ترس و وحشت وارد این کانونهای های عبادت شدند مخره آنها در دنیا فقط رسوایی است و در اخیریت عذاب عظیم الهی ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله این الله واسع علیم مشرق و ازان خداست و به هر سو رو کنید خدا آنجاست خداوند بی است. و داناست وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما فی السماوات والارض كل له قانتون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 هستی بخش آسمان‌ها و زمین است و هنگامی که فرمان وجود چیزی را صادر کند تنها می‌گوید موجود باش و آن فوری موجود می‌شود و قال الذين لا يعلمون لولا يكلمن الله او تأتینا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد لقوم يوقنون. افراد ناآگاه گفتند چرا خدا با ما سخن نمیگوید؟ و یا چرا آیه و نشانهای برای خود ما نمی آید پیشینیان آنها نیز همین گونه سخن می گفتند دلها و افکارشان مشابه یک است ولی ما به اندازه کافی آیات و نشانه ها را برای اهل یقین روشن ساخته این اینا بالحق بشیرا و نذیرا و لا تسألو عن اصحاب الجحیم ما تو را به حق برای بشارت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 ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير هرگز یهود و نصارا از تو ترازی نخواهند شد تا به طور کامل تسلیم خواستهای آنها شوی و از آئین تحریف یافته آنان پیروی کنی بگو هدایت الهی تنها هدایت است و اگر از هوا و حوث های آنان پیروی کنی بعد از آنکه که آگاه شده ای هیچ سرپرست و یاوری از سوی خدا برایت نخواهد بود الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُمْ حَقَّ تِلَاوَتِهِ اُولَائِكَ اولئی یؤمنون به و من یکفر به الخاسرون کسانی که کتاب آسمانی به آنها داده این آن را چنان که شایسته آنست می آنها به پیامبر اسلام ایمان می و کسانی که به او کافر شوند زیانکارند يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم و انی فضلتكم, فضلتكم على العالمين ای بني اسرائيل نعمت مرا كه به شما ارزانی داشتم بي آورید و نیز به خاطر آورید كه من شمارا بر جهانیان برتری بخشید. و تقویم لا تجزی نفس عن نفس شیء و لا یقبل منها عدل و لا یقبل منها عدل و لا تفعها شفاعت و لاهم و لاهم از روزی به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 قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن قال لا ينال عهد الظالمين. به خاطر آورید هنگامی که خداوند ابراهیم را با وسایل گوناگونی آزمود و او به خوبی از اهدۀ این آزمایش ها برآمد خداوند به او فرمود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 و به یاد آورید هنگامی را که ابراهیم عرض کرد پروردگارا این سرزمین را شهر امنی قرارده و اهل آن را آنها که به خدا و روز باز پسین ایمان آوردند، از سمرات گوناگون روزیده گفت دعای تو را اجابت کردم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 ربنا تقبل منا اینده انت العليم و نیز به یاد آورید هنگامی را که ابراهیم و اسمایل پایه های خانه را بالا می و می‌گفتند، پروردگارا، از ما بپذیر که تو شنوا و داناد ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم فربطارا ما را تسليم فرمان خود قرار ده و از دودمان ما امتی که تصمیم فرمانت باشند به وجود آور و طرز عبادتمان را به ما نشانده، و توبه ما را بپذیر که تو توبه پذیر و مهربانی ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكیم پروردگارا در میان آنها پیامبری از خودشان برانگیز تا آیات تو را بر آنان بخواند و آنها را کتاب و حکمت بیاموزد و پاکیزه کند زیرا تو تواناب و حکیمی و بر این کار قادری و من يرغب عن ملة ابراهیم الا من سفه نفسه و صافین فی دنیا و این نوف اخیرات لم صالحین جز افراد صفح و نادان چه کسی از آین ابراهیم با آن پاکی و درخشندگی روی گردان خواهد شد. ما او را در این جهان برگزیدیم و او در جهان دیگر از صاحانه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 ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتون الا وانتم مسلمون وابراهيم ويعقوب در واقعين لحظات عمر فرزندان خود را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 قالوا نعبد الهك واله آبائك ابراهيم واسماعيل و اسحاق الههم واحدا ونحن له مسلمون آیا هنگامی که مرگ یعقوب فرا رسید شما حاضر بودید در آن هنگام که به فرزندان خود گفت پس از من چه چیز را می‌پرسید گفتند خدای تو و خدای پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق خداوند یکتا را و ما در برابر او تسلیم هستیم تلك امت قد قدخلت لها ما کسبت ولكم ما کسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون آنها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 اهل کتاب گفتند یهودی یا مسیحی شوید تا هدایت یابید بگو این آینهای های تحریف شده هرگز نمیتواند موجب هدایت گردد بلکه از آیین خالص ابراهیم پیروی کنید و او هرگز از مشرکان نبود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 وما ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون بگویید ما به خدا ایمان آورده ایم و به آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم و اسماییل و اسحاق و یعقوب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 فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُنَّ بِهِ فَقَدِهِتَدَوْهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِي اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أگر انهاز بمعنده آنچه شما ایمان آورده اید ایمان بیاورند، هدایت یافدند و اگر سرپیچی کنند، از حق جدا شده اند و خداوند شر آنها را از تو دفع میکند و او شنونده و داناست الله و من احسن من الله و له رنگ خدایی به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 قل أأنتم أعلم ام الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون يا ميگویید و اسمائیل و اسحاق يعقوب و أثبات یهودی يا نسرانی بودند بگو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 لها ما و لکم ما کسبتم و لا آنها امتی بودند که درگذشتند آنچه کردند برای خودشان است و آنچه هم شما کرده اید برای خودتان است و شما مسئول اعمال آنها نیستی سيقول السفهاء من الناس ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم بزودي سبك مقزان از مردم میگویند چه چیز آنها را از قبله ای که بر آن بودند بازگردانید بگو مشرق و از ازان خداست خدا هر کس را بخواهد به راه راست هدایت می‌کند وکذلک جعلناکم امته وسطا لتکونو شهداء علی الناس ویکون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 وَنَكَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ این الله بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ همان گونه که شما را نیز امت میانی قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر هم بر شما گواه باشد و ما آن قبل ایران که قبلا بر آن بودی تنها برای این قرار دادیم که افرادی که از پیامبر پیروی میکنند از آنها که به عقب میگردند مشخص شوند و مسلما این حکم جز بر کسانی که خداوند آنها را هدایت کرده دشوار بود و خدا هرگز ایمان شما را زایع نمیگرداند زیرا خداوند نسبت به مردم رحیم و مهرباند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 وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَنَّا يَعْمَلُونَ نگاه های انتظارامیز تراب سوی آسمان میبینیم اکنون تراب سوی قبلهی که از آن خوشنود باشی باز میگردانیم پس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 ولا ان اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين سوگند که اگر برای اهل کتاب هر گونه آیه و نشانه و دلیلی بیاوری از قبله تو پیروی نخواهند کرد و تو نیز هیچگاه از قبله آنان پیروی نخواهی نمود و حتی هیچیک از آنها پیروی از قبله دیگری نخواهد کرد و اگر تو پس از این آگاهی متابعت حوث آنها کنی مسلما از ستمگران خواهی بود الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريق منهم لا يبتمون الحق وهم يعلمون خسانى كتاب آسمانی به آنانداد ایم او پیامبر را همچون فرزندان خود میشناسند ولی جمعی از آنان حق را آگاهان پنهان میکنند الحق من ربك فلا تكونن من الممترین. این فرمان تغییر قبله حکم حقی از طرف پروردگار توست بنابر این هرگز از تردید کنندگان در آن مباش و وجهة هو موليها فاستبق الخيرات اینما تکونو یأتی الله جميعا این الله علا كل شيء قدیر هر طایفه ای قبل ای دارد که خداوند آن را تأیین کرده است در نیکی و اعمال خیر بر یکدیگر دیگر سبقت جویید هر جا باشید خداوند همه شما را حاضر می کند زیرا او بر هر كاری تواناست ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه لالحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون از هرجا خارج شدی به هنگام نماز روی خود را به جانب مسجد الحرام کن. این دستور حقی از طرف پروردگار توست و خداوند از آنچه انجام میدهید قافل نیست و من حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحیثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لله. لِأَلَّا يَكُونَ للناس عَلَيْكُمْ حُجَّتٌ إِلَّا الذين ظَلَمُوا منهم فلا تخشوهم فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي وَلِعُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ و از جا خارج شدی روی خود را به جانب مسجد الحرام کن و هر جا بودید روی خود را به سوی آن کنید تا مردم جز ظالمان دلیلی بر ضد شما نداشته باشند از آنها نترسید و تنها از من بترسید این تغییر قبله به خاطر آن بود که نعمت خود را بر شما تمام کنم شاید هدایت شد كمام أروسََّ آياتنا که با تغییر قبله نعمت خود را بر شما کامل کردیم رسولی از خودتان در میان شما فرستادیم تا آیات ما را به شما بیخواند و شما را پاک کند و به شما کتاب و حکمت بیاموزد و آنچه که را نمی به شما یاد دهد. ولا پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر من آگوید. و در برابر نعمت هایم کفران نکنید. یا ایوها الذين آمنوا استعینوا بالصبر و صلاح این الله مع صابرین ای افرادی که ایمان آورده اید از صبر و استقامت و نماز کمک بگیرید، زیرا خداوند با صابران است. ولا تقولوا لمن قتل في سبيل الله أموات بل احياء ولكن لا تشعرون و آنها که در راه خدا کشته میشوند مرده نگویید بلکه آنان زنده اند ولی شما نمیفهمید ولنبل ونکم بشیئا من الخوف والجوع ونقص و نقصیم من الاموال والانفز والثمرات و بشیر قطعا همه شما را با چیزی از ترس گرسنگی و کاهش در مال ها و جان و میوه ها آزمایش میکنیم و بشارت ده به استقامت کنندگان الذین إذا أصابتهم مصیبة قالوا،, قالوا إنا لله ونا له راجعون آنها که هرگاه مصیبتی به ایشان میرسد میگویند ما ازان آن خداییم و به سوی او باز میگردیم اولئیک علیهم صلوات من ربهم ورحمه رحمه و هم المهتدون اینها همانها هستند که التاف و رحمت خدا شامل حالشان شده و آنها هستند هدایت یافتگان صنف و المروت من شعایر الله، فمن حج البيت و اعتمر فلا جناح عليه أي الطوف بههما، و من تطوع خير، فإن الله شاكر علي. صنف و از شعایر خداست. بنابر این کسانی که حج خانه خدا و یا عمره انجام میدهند مانعی نیست که بر آن دو طواف کنند و کسی که فرمان خدا را در انجام کارهای نیک اطاعت کند خداوند در برابر عمل او شکرگزار و آگاه است کسانی الذين يكتمون ما من البينات والهدى من بعد ما, للناس, من بعد ما للناس في الكتاب يلعنهم الله <pinch entrepreneami> و وسیله هدایتی را که نازل کرده ایم بعد از آن که در کتاب برای مردم بیان نمودیم کتمان کنند خدا آنها را لعنت می و همه لعن کنندگان نیز آنها را لعن می کند اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَائِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَ التَّوَّابُ مگر آنها که توبه و بازگشت کردند و اعمال بد خود را با اعمال نیک اصلاح نمودند و آنچه را کتمان کرده بودند آشکار ساختند من توبه آنها را میپذیرم که من توبه پذیر و مهربانم الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك أولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين <تصفيق> کسانی کافر شدند و در حال کفر از دنیا رفتند لعنت خداوند و فرشتگان و همه مردم بر آنها خواهد بود خالدین فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون همیشه در آن باقی میمانند نه در عذاب آنان تخفیف داده میشود و نه مهلتی خواهند داشت و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم و خدای شما خداوند یگانه ایست که غیر از او معبودی نیست اوست بخشنده و مهربان و دارای رحمت آم و خاص این نفی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل والنهار والفلکلتی والفلكة التي تجري في البحر بما يفعل الناس وما أنزل الله وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات, لآيات لقوم يعقلون در آفرينش آسمانهاب و آمد و شد شب و روز و کشتی هایی که در دریا به سود مردم در حرکتند و آبی که خداوند از آسمان نازل کرده و با آن زمین را پس از مرگ زنده نموده و انواع جنبندگان را در آن گسترده و همچنین در تغییر مسیر بادها و عبرهایی که میان زمین و آسمان مسخرند نشانه است. برای مردمی که عقل دارند و می اندیشند و من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو لو یر الذین ظلمون اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا و الله شديد العذاب بعضی از مردم معبودهای غیر از خداوند برای خود انتخاب می کنند و آنها را همچون خدا دوست می دارند اما آنها که ایمان دارند عشقشان به خدا شدیدتر است و آنها که ستم کردند هنگامی که عذاب الهی را مشاهده کنند خواهند دانست که تمام قدرت از آن خداست و خدا دارای مجازات شدید است ادبر و الذينت تو بیومین الذي تبع او را او ذبه و, و تقلقطات آن هنگام رهبران گمراه و گمراه کننده از پیروان خود بیزاری می جوگند و کیفر خدا را مشاهده می کنند و دستشان از همه جا کوتاه می شوند وَقَالَ الَّذِينَ التَّبَعُ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرْوَةً فَنَتَبَرَّوْا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّوْا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيِّهُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ وَدَرِينَهِمْ قَمْ پیروان میگویند کاش بار دیگر به دنیا برمیگشتیم تا از آنها ها پیشوایان گمراه بیزاری جوییم آنچنان که آنان امروز از ما بیزاری جستند آری خداوند این چنین اعمال آنها را به صورت حسرت زائی به آنان نشان می‌دهد و هرگز از آتش دوزخ خارج نخواهند شد يا أيها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا ولا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين اي مردم از آنچه در زمین است حلال و پاکیزه بخورید و از گام های پیروی نکنید چه اینکه او دشمن آشکار شماست. این معمرغوم بسوی والفحشی و لا تعلمون. او شما را فقط به بدیها و کار زشت فرمان میدهد. و نیز دستور میدهد آنچه را که نمیدانید. به خدا نسبت دهید و اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا قالوا بل نتبع ما لقينا عليه آباءنا اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون و هندامی که به آنها گفته شود از آنکه خدا نازل کرده است پیروی کنید میگویند نه ما از آنچه پدران خود را بر آن یافتیم پیروی می نماییم آیا اگر پدران آنها چیزی نمی فهمیدند و هدایت نیافتند باز از آنها پیروی خواهند کرد و مثل الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِيَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً سُمُّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ مسل تو در دعوت کافران بسان کسیست که گوسفندان و حیوانات را برای نجات از چنگال خطر صدا میزند ولی آنها چیزی جز سر و صدا نمی شنوند و حقیقت و مفهوم گفتار او را درج نمی کنند. این کافران در واقع کر و لال و نابینا هستند از این رو چیزی نمیفهمند. یا ایها الذين آمنوا کلوا من طيبات ما رزقناكم واشکروا لله واشکروا لله ان کنتم اياه تعبدون ای کسانی که ایمان آوردید از نعمت‌های پاکیزه‌ای که به شما روزی دادیم بخورید و شکر خدا را به جا آورید اگر او را پرستش می کنید اینما حرم عليكم المیت تودم و لحم وما و ما اهل به, به لغیر الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه إن الله غفور رحیم خداوند تنها گوشت مردار، خون، گوشت خوک و آنچرا نام غیر خدا به هنگام ذبح بر آن گفته شود حرام کرده است. ولی آن کس که مجبور شود در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد گناهی بر او نیست. خداوند زنده و مهربان است.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 کسانی که کتمان می‌کنند آنچرا خدا از کتاب نازل کرده و آن را به بهای کمی می‌فروشند آنها جز آتش چیزی نمی‌خورند و خداوند روز قیامت با آنها سخن نمی‌گوید و آنان را پاکیزه نمی‌کند و برای آنها عذاب دردناکی است اولائی که الذین اشتروا الضلالت بالهدى والعذاب بالمغفره فما اصبرهم علی النار اینان همانهایی ای هستند که گمراهی را با هدایت و عذاب را با آمرزش مبادله کرده اند راستی چقدر در برابر عذاب خداوند شکیبا هستند ذلك بان الله نزل الكتاب اینها به خاطر آن است که خداوند کتاب آسمانی را به حق نازل کرده و آنها که در آن اختلاف میکنند در شکاف عمیقی قرار دارند ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن, ولكن البر ومن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال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 وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ نیکی تنها این نیست که به هنگام نماز روی خود را به سوی مشرق و یا مغرب کنید بلکه نیکی و نیکو کار است که به خدا و روز رستاخیز و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیامبران ایمان آورده و مال خود را با همه علاقه ای که به آن دارد به خیشاوندان و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه و سائلان و بردگان انفاق می کند. نماز را برپا می دارد و زکات را می پردازد. و همچنین کسانی که به احل خود به هنگامی که عهد بستند وفا میکنند و در برابر محرومیت ها و بیماری و در میدان جنگ استقامت به خرج می اینها کسانی هستند که راست می گویند و اینها هستند پرهیزگاران. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل فالحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف وادا الىه باحسان ذلك تخفیف من ورحمه فمن بعد ذلك فله عذاب ای افرادی که ایمان آورده اید حکم قصاص در مورد کشتگان بر شما نوشته شده است آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن پس اگر کسی از سوی برادر دینی خود چیزی به او بخشیده شود و حکم قصاص او تبدیل به خون گردد باید از راه پسندیده پیروی کند و صاحب خون حال پرداخت کننده دیه را در نظر بگیرد و او قاتل نیز به نیکی دیه را به ولی مقتول بپردازد و در آن موسامه نکند این تخفیف و رحمتی است از ناحیه پروردگار شما و کسی که بعد از آن تجاوز کند عذاب دردناکی خواهد داشت ولكم فی القصاص حیات یاوللالبال لعلکم تتقون و برای شما در قصاص حیات و زندگی است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 اگر چیز خوبی از خود به جایی گذارده برای پدر و مادر و نزدیکان به طور شایسته وصیت کند این حقی است بر پرهیزگاران فمن بدله بعدما سمعه فانما فا اسمه على الذین يبدلونه ان الله سمیع علیم پس کسانی که بعد از شنیدنش آن را تغییر دهند گناه آن تنها بر کسانی است که آن وصیت را تغییر میدهند خداوند شنوا و داناست فمن خاف من موس جنفا او اثما فأصلح بینهم فلا اثم علیه إن الله غفور رحیم و کسی چه از انحراف وسیعت کننده و تمایل یک جانبه او به بعض ورسه یا از گناه او که مبادا وسیعت به کار خلافی کند بترسد و میان آنها را اصلاح دهد گناهی بر او نیست و مشمول حکم تبدیل وسیعت نمی باشد خداوند آمرزنده و مهربان است یا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم, لعلكم تتقون ای افرادی که ایمان آورده اید روزه بر شما نوشته شده همان گونه که بر کسانی که قبل از شما بودند نوشته شد تا پرهیزگار شوید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 و ان چند روز معدودی را باید روزه بدارید و هر کس از شما بیمار یا مسافر باشد تعدادی از روزهای دیگر را روزه بدارد و بر کسانی که روزه برای آنها طاقت فرساست همچون بیماران مزمن و پیر مردان و پیرزنان، لازم است کفار بدهند مسکینی را اطعام کنند و کسی که کار خیری انجام دهند برای او بهتر است و روز داشتن برای شما بهتر است اگر بدانیم شهر رمضان انزل فیه القرآن هدل لنناس و بینات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 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم ولعلكم تشكرون روزه در چند روز معدود ماه رمضان است ماهی که قرآن برای راهنمایی مردم و نشانهای هدایت و فرق میان حق و باطل در آن نازل شده است پس آن کس از شما که در ماه رمضان در حضر باشد روزه بدارد و آن کس که بیمار یا در سفر است روزهای دیگری را به جای آن روزه بگیرد خداوند راحتی شما را میخواهد، نه زحمت شما را هدف این است که این روزها را تکمیل کنید و خدا را بر اینکه شما را هدایت کرده بزرگ بشمورید باشد که شکرگزاری کنید و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الدعی اذا دعان فلیستجیبولی لي وليؤمنوا بی لعلهم يرشدون و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال کنند بگو: من نزدیکم دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا میخواند پاسخ میگویم پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راه یابند و به مقصد برسند.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 ذلک حدود الله فلا تقربوها كذلك یبین الله آیاته للناس لعلهم یتقون آمیزش جنسی با همسرانتان در شب روزهایی که روزه میگیرید حلال است آنها لباس شما هستند و شما لباس آنها هر دو زینت هم و سبب حفظ یکدیگر خداوند میدانست که شما به خود خیانت می کردید و این کار ممنوع را انجام می دادید پس توبه شما را پذیرفت و شما را بخشید اکنون با آنها آمیزش کنید و آنچه را خدا برای شما مقرر داشته طلب نمایید و بخورید و بیاشامید تا رشته سپید صبح از رشته سیاه شم برای شما آشکار گردد سپس روزه را تا شب تکمیل کنید و در حالی که در مساجد به پرداخت اید با زنان آمیزش نکنید این مرزهای الهی است پس به آن نزدیک نشوید خداوند این چنین آیات خود را برای مردم روشن می‌سازد باشد که پرهیزگار گردند وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وتدلوا وتدلو بِهَا إِلَى الحكام لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَمْوَالِ را به باطل در میان خود نخورید و برای خوردن بخشی از اموال مردم به گناه قسمتی از آن را به انوان رشوه به قضات ندهید در حالی که میدانید این کار گناه است یسألونک عن قل هي للناس والحج ولیس البرو بأن تأتوا البیوت من ظهورها ولكن البر من اتقی وأتوا البیوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون درباره هلالهای ماه از تو سؤال می کنند بگو آنها بیان اوقات و تقویم طبیعی برای نظام زندگی مردم و تعیین وقت حج است کار نیک آن نیست که از پشت خانه ها وارد شوید بلکه نیکی این است که پرهیزگار باشید و از در خانه ها وارد شوید و تقوا پیشه کنید تا رستگار گردید وقاین و ف زبی الله الذي اونقاین ولا تعتدوا إن این الله لاحبون مددین و در راه خدا با کسانی که با شما میجنگند نبرد کنید و از حد تجاوز نکنید که خدا تعدی کنندگان را دوست نمیدارند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 و آنها را بود پرستانی که از هیچ گونه جنایتی عبا ندارند هر کجا یافتی به قتل برسانید و از آنجا که شما را بیرون ساختند آنها را بیرون کنید و فتنه و بود پرستی از کشتار هم بدتر است و با آنها در نزد مسجد الحرام در منطقه حرم جنگ نکنید مگر اینکه در آنجا با شما بجنگند پس اگر در آنجا با شما پیکار کردند آنها را به قتل برسانید چنین است جزای کافران فاین فا انتهوا فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ و اگر خودداری کردند خداوند آمر زنده و مهربان است وقاتلوهم حتی لا تكون فتنه و يكون الدین لله فائنين و با آنها پیکار کنید تا فتن باقی نماند و دین مخصوص خدا گردد پس اگر دست برداشتند مزاحم آنها نشوید زیرا تعدی جز بر ستم روانی است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 و به طور کلی هرکس به شما تجاوز کرد همانند آن بر او تعدی کنید و از خدا بپرهیزید و زیاده روی ننمایید و بدانید خدا با پرهیزگاران است و فی سبیل الله ولا تلقوا بایدیکم الى التهلكة و احسنو این الله يحب المحسنین و در راه خدا انفاق کنید و با ترک انفاق خود را به دست خود به حلاکت نیف و نیکی کنید که خداوند نیکوکارن را دوست می دارد و اتیمو الحج والعمر تلیلله فا این احصرتم فمستیسر من الهدی ولا تحلقو رؤوسكم حتی یبلغ الهدی محله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 و حج و عمره را برای خدا به اتمام برسانید و اگر محصور شدید و مانعی ایمانند ترس از دشمن یا بیماری اجازه نداد که پس از احرام بستن وارد مکه شوید آنچه از قربانی فراهم شود زیب کنید و از احرام خارج شوید و سرهای خود را نتراشید تا قربانی به محلش برسد و در قربانگاه زیب شود و اگر کسی از شما بیمار بود و یا ناراحتی در سر داشت و ناچار بود سر خود را بتراشد باید فدیه و کفارعی از قبیل روزه یا صدقه یا گوسفندی بدهد و هنگامی که از بیماری و دشمن در امان بودید هر کس با ختم عمره حج را آغاز کند آنکه از قربانی برای او میسر است زیب کند و هر که نیافت سه روز در ایام حج و هفت روز هنگامی که باز میگردید روزه بدارد این ده روز کامل است البته این برای کسی است که خانواده او نزد مسجد الحرام نباشد و از خدا بپرهیزید و بدانید که او سخت کیفر است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 حج در ماهای معینی است و کسانی که با بستن احرام و شروع به مناسک حج حج را بر خود فرض کرده اند باید بدانند که در حج آمیزش جنسی با زنان و گناه و جدال نیست و آنچه از کارهای نیک انجام دهید خدا آن را می‌داند و زاد و توشه تهیه کنید که بهترین زاد و توشه پرهیزگاری است و از من بپرهیزید ای خیرت مندان لیس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا اذا من عرفات فاذکروا الله عند المشعر الحرام و كما هداكم و كنتم من قبله لمن گناهی بر شما نیست که از فضل پروردگارتان و از منافع اقتصادی در ایام حج طلب کنید و هنگامی که از عرفات کوچ کردید خدا را نزد مشعر الحرام یاد کنید او را یاد کنید همانطور که شما را هدایت نمود و قطعا شما پیش از این از گمراهان بودید سپس از همان جا که مردم کوچ می کنند به سوی سرزمین منا کوچ کنید و از خداوند آموزش بطلبید که خدا آموزنده مهربان است. فإذا فا قضيتم مناسككم فذكر الله كَذِكْرِكُمْ آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتِنَا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق و چون آداب ویژه حج خود را به جای همان گونه که پدران خود را به یاد میآورید یا با یاد کردن بیشتر خدا را به یاد آورید و از مردم است که می‌گوید پروردگاه را به ما در همین دنیا عطا کن و حالان که برای او در آخرت نصیبی نیست و من هم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرت حسنة وقنا, وقنا عذاب النار و بعضی میگویند پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش اولئیک لهم نصیب مما كسبوا والله سریع الحساب آنها از کار و دعای خود نصیب و بحر ای دارند و خداوند سریع الحساب است و الله فی ایام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر, ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقا واتقوا الله وعلموا أنكم إليه تحشرون و خدا را در روزهای مؤینی یاد کنید روزهای یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ماه ذی و هر کس شتاب کند و ذکر خدا را در دو روز انجام دهد گناهی بر او نیست و هر که تأخیر کند و سه روز انجام دهد نیز گناهی بر او نیست برای کسی که تقوا پیشه کند و از خدا بپرهیزید و بدانید شما به سوی او مشهور خواهید شد و من, من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد الخصام مردم مردوم کسانی هستند که گفتار آنان در زندگی دنیا مایه اعجاب تو می شود. در ظاهر اظهار محبت شدید می کنند و خدا را بر آنچه در دل دارند گواه میگیرند این در حالی است که آنان سرسخت ترین دشمنانند و اذا تولى سعاف الارض و الحرث والنسل والله لا يحب الفساد نشانه آن این است که هنگامی که روی برمیگردانند و از نزد تو خارج می شوند در راه فساد در زمین کوشش می کنند و ها و چهار پایان را نابود می سازند با اینکه که می دانند خدا فساد را دوست نمی دارد و اذا قیل له اتق الله اخذته العزت بالاثم فحسبه جهنم ولبی سلمهاد و هنگامی که به آنها گفته شود از خدا بترسید لجاجت آنان بیشتر می شود و لجاجت و تعصب آنها را به گناه می کشاند آتش دوزخ برای آنان کافی است و چه بد جایگاهیست و من الناس من یشری نفسه بطغاء مرضات الله و الله رؤوف بالعباد بعضی از مردم با ایمان و فداکار همچون علی علیه السلام در لیلت المبیت به هنگام خفتن در جایگاه پیغمبر صلوات الله علیه و آله و سلم جان خود را به خاطر خوشنودی خدا می فروشند و خداوند نسبت به بندگان مهربان است یا ایها الذین آمنوا دخلوا في السلم کافتا ولا <سلام> تتبعوا ولا خطوات الشیطان این لهو لكم مبین. ای کسانی که ایمان آورده اید همگی در صلح و آشتی درائید و از گامهای شیطان پیروی نکنید که او دشمن آشکار شماست و این زللتم من بعد ما جاءتكم البینات فعلمو فعلمو ان الله عزیز و اگر بعد از این همه نشانه های روشن که برای شما آمده است لغزش کردید و گمراه شدید بدانید که خداوند توانا و حکیم است هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة والملائكة و الأمر و الله ترجع الأمور آیا پیروبان فرمان شیطان پس از این همه نشانه ها و برنامه های روشن انتظار دارند که خداوند و فرشتگان در سایه هایی از عبرها به سوی آنان بیایند و دلایل تازه ای در اختیارشان بگذارند با اینکه که چون این چیزی محال است و همه چیز انجام شده و همه کارها به سوی خدا بازگردانده می شود بنی اسرائیل کم آتینا هم من بینه و مَن يُبَدِّل نِّعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ از بنی اسرائیل به فرصت چه اندازه نشانه‌های روشن به آنها دادیم و کسی که نعمت خدا را پس از آنکه به سراغش آمد تبدیل کند و در مسیر خلاف به کار گیرد گرفتار عذاب شدید الهی خواهد شد که خداوند سخت کیفه است زیین للذین كفروا الحیات الدنیا و من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه والله یرزق من یشاء بغیر حساب زندگی دنیا برای کافران زینت داده شده است از این رو افراد با ایمان را که گاهی دستشان تهی مسخره می کنند در حالی که پرهیزگاران در قیامت بالاتر از آنان هستند و خداوند هر کس را بخواهد بدون حساب روزی میدهد. كان الناس أمته واحدة فبعث الله النبئين فبعث الله النبئين مبشرين ومذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.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 مردم در آغاز یک دسته بودند خداوند پیامبران را برانگیخت تا مردم را بشارت و بین دهند و کتاب آسمانی که به سوی حق دعوت می کرد با آنها نازل نمود تا در میان مردم در آنچه اختلاف داشتند داوری کند افراد با ایمان در آن اختلاف نکردند تنها گروهی از کسانی که کتاب را دریافت داشته بودند و نشانه‌های روشن به آنها رسیده بود به خاطر انحراف از حق و ستمگری در آن اختلاف کردند خداوند آنها ای را که ایمان آورده بودند به حقیقت آن که مورد اختلاف بود به فرمان خودش رهبری نمود و خدا هر کس را بخواهد به راه راست هدایت می‌کند أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا, ولما يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ قُبِلُوا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر این نصر الله قریب آیا گمان کردید داخل بهشت میشوید شوید آنکه حوادثی همچون حوادث گذشتگان به شما برسد همانان که گرفتاری ها و ناراهتی ها به آنها رسید و آنچنان ناراحت شدند که پیامبر و افرادی که با او ایمان آورده بودند گفتند پس یاری خدا کی خواهد آمد؟ در این هنگام تقاضای یاری از او کردند و به آنها گفته شد آگاه باشید یاری خدا نزدیک انفاقوا من خير فللوالدين والاقربين السبيل وما میکنند چه چیز انفاق کنند بگو هر خیر و نیکی که انفاق میکنید باید برای پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و مستمندان و درماندگان در راه باشد و هر کار خیری که انجام دهید خداوند از آن آگاه است کتب علیکم القتال و هو کره لکم و ان تکرهو شیئا و هو خیر لکم سا تو تحبوا شيء وهو و, عسا انتو شیئا و هو لكم والله يعلم وآدم لا تعلمون جهاد در راه خدا بر شما مقرر شد در حالی که برایتان ناخوشایند است چه بسا چیزی را خوش نداشته باشید حالان که خیل شما در آن است و یا چیزی را دوست داشته باشید؟ حالان که شر شما دران است و خدا میداند و شما نمیدانید يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام و اخراج اهله منه أكبر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 فاولائك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولائك اصحاب النارهم فيها خالدون اخ تو در جنگ کردن در ماه حرام سوال میکنند بگو جنگ در آن گناهی بزرگ است ولی جلوگیری از راه خدا و گرایش مردم به آیین حق و کفر ورزیدن نسبت به او و که احترام مسجد الحرام و اخراج ساکنان آن نزد خداوند مهمتر از آن است و ایجاد فتنه حتی از قتل بالاتر است و مشرکان پیوسته با شما میجنگند تا اگر بتوانند شما را از آیینتان برگردانند ولی کسی که از آینش برگردد و در حال کفر بمیرد تمام اعمال نیک گذشته او در دنیا و آخرت برباد میرود و آنان اهل دوزخند و همیشه در آن خواهند بود این الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هاجروا وَجَهَدُوا في سَبِيلِ الله اُلَائِكَ اُلَائِكَ يَرُجُونَ رَحْمَتَ الله والله غفور کسانی که ایمان آورده و کسانی که هجرت کرده و در راه خدا جهاد نموده اند آنها امید به رحمت پروردگار دارند و خداوند آمر زنده و مهبان است یسألونک عن قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون لعلكم تتفكرون درباره شراب و قمار از تو سوال میکنند. بگو در آنها گناه و زیان بزرگی است و منافعی از نظر مادی برای مردم در دارند ولی گناه آنها از نفعشان بیشتر است و از تو میپرسند چه چیز انفاق کنند بگو از مازاد نیازمندی خود این اینچنین خداوند آیات را برای شما روشن می‌سازد شاید اندیشه کنید في دنیا والاخره ویسالونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر وان تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم این الله عزیز حکیم تا اندیشه کنید درباره دنیا و آخرت و از تو درباره یتیمان سوال می کنند بگو اصلاح کار آنان بهتر است و اگر زندگی خود را با زندگی آنان بیامیزید، مانعی ندارد آنها برادر دینی شما هستند و همچون یک برادر با آنها رفتار کنید خداوند مفسدان را از مسلحان باز می و اگر خدا بخواهد شما را به زحمت می اندازد و دستور می دهد در عین سرپرستی یتیمان زندگی و اموال آنها را به کلی از اموال خود جدا سافید ولی خداوند چون این نمی‌کند، زیرا او توانا و حکیم است. ولا تنكح المشرکات حتى يؤمن ولا امة مؤمنة خير من مشركته ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النار والله يدعون الى الجنه والمغفره باذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون وباذنان مشرك تا ایمان نیاورده ازدواج نکنید کنیز با ایمان از زن آزاد بودپرست بهتر است هرکند زیبایی یا ثروت یا موقعیت او شما را به شگفتی آورد و زنان خود را به ازدواج مردان بودپرست تا ایمان نیاورده در نیاورید یک غلام با ایمان از یک مرد آزاد بود پرست بهتر است هرچند مال و موقعیت و زیبایی او شما را به شگفتی آورد آنها دعوت به سوی آتش می کنند و خدا دعوت به بهشت و آمرزش به فرمان خود می نماید و آیات خیش را برای مردم روشن می سازد شاید متذكرون ويسالونك عن المحيض قل هو اذن فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله این الله یحب التوابین و المتطهرین و از تو درباره هیز حیز سؤال می کنند بگو چیز زیانبار و آلوده است. از این رو در حالت قائدگی از زنان کنار گیری کنید و با آنها نزدیکی ننمایید تا پاک شوند و هنگامی که پاک شدند از طریقی که خدا به شما فرمان داده با آنها آموزش کنید خداوند توبه کنندگان را دوست دارد و پاکان را نیز دوست دارد نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم وقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه زنان شما محل بزرقشانی شما هستند پس هر زمان که بخواهید میتوانید با آنها آمیزش کنید اثر نیکی برای خود از پیش بفرستید و از خدا بپرهیزید و بدانید او را ملاقات خواهید کرد و به مؤمنان بشارت دهد. ولا تجعلوا الله عروضه لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس والله سميع علیم خدا را در معرض سوگندهای خود قرار ندهید و برای این که نیکی کنید و تقوا پیش سازید و در میان مردم اصلاح کنید سوگند یاد ننمایید و خداوند شنوا بود داناست الا ياخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن ياخذكم ولكن ياخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم خداوند شما را به خاطر سوگندهایی که بدون توجه یاد میکنید مؤاخذه نخواهد کرد اما به آنکه دلهای شما کسب کرده مواخذ می کند و خداوند آمور زنده و بردبار است <محش> <محش> <محش> <الذين> من تربص أشهر فإن الله کسانی <رحيم> <محش> که زنان خود را ایلا نمایند سوگند یاد می‌کنند که با آنها آمیزش جنسی ننمایند حق دارند چهار ماه انتظار بکشند اگر در این فرصت بازگشت کنند چیزی بر آنها نیست زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است و عزمو الطلاق فان الله و اگر تصمیم به جدائی گرفتند خداوند شنوا و, و المطلقات یتربصن بی انفسهن ثلاثت قرو ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ان كن يؤمنون بالله واليوم الاخر وبعولتهم احق بردهم في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهم مثل الذي عليهم بالمعروف وللرجال عليهم درجه والله عزيز حكيم زنان مطلقه باید به مدت سه مرتبه عادت ماهانه دیدن انتظار بکشند. و اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارند، برای آنها حلال نیست که آنچرا خدا در رحمهایشان آفریده کتمان کنند. و همسرانشان برای بازگرداندن آنها و از سرگرفتن زندگی زناشویی در این مدت از دیگران سزاوارترند در صورتی که به راستی خواهان اصلاح باشند و برای زنان همانند وظایفی که بر دوش آنهاست حقوق شایستهای قرار داده شده و مردان برانان آنان برتری دارند و خداوند توانا و حکیم است الطلاق مر وتان فامساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمه شيئا إلا أن يخافا إلا أي خاف ألا يقي حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم ما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون طلاق دو مرتبه است و در هر مرتبه باید به طور شایسته همسر خود را نگاه داری کند و آشتی نماید یا با نیکی او را رها سازد و از او جدا شود و برای شما حلال نیست که چیزی از آنچه به آنها داده ای پس بگیرید مگر اینکه دو همسر بترسند که حدود الهی را برپا ندارند اگر بترسید که حدود الهی را رعایت نکنند مانعی برای آنها نیست که زن فدیه و عوضی بپردازد و طلاق بگیرد اینها حدود و مرزهای الهی است از آن تجاوز نکنید و هر کس از آن تجاوز کند ستمگر است فاین طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غَيْرَهُ فإن طلقها فلا جناح عليهما إن يراجعا إن ظننا أن, أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون اگر بعد از دو طلاق و رجوع بار دیگر او را طلاق داد از آن به بعد زن بر او حلال نخواهد بود مگر اینکه همسر دیگری انتخاب کنند و با او آمیزش جنسی نمایند در این صورت اگر همسر دوم او را طلاق گفت گناهی ندارد که بازگشت کنند و با همسر اول دوباره ازدواج نمایند در صورتی که امید داشته باشند که حدود الهی را محترم می شمرند. اینها حدود الهی است که خدا آن را برای گروهی که آگاهند بیان می‌نماید. و اذا طلاقت مون نساء فبلغنا جلهن فامسکوهن فامسکوهن بمعروف او بمعروف وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزْوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكِمَةِ يَعِذُكُمْ بِهِ و الله وعلممون ان الله بكل این علیم و هنگامی که زنان را طلاق دادید و به آخرین روزهای عده رسیدند یا به طرز صحیحی آنها را نگاه دارید و آشتی کنید و یا به طرز پسندیدهای ای آنها را رها سازید و هیچگاه، به خاطر زیان رساندن و تعدی کردن آنها را نگاه ندارید و کسی که چنین کند به خیشتن ستم کرده است و با این اعمال و سوء استفاده از قوانین الهی آیات خدا را به استهزا نگیرید و به یاد بیاورید نعمت خدا را برخود و کتاب آسمانی و علم و دانشی که بر شما نازل کرده و شما را با آن پند می‌دهد و از خدا بپرهیزید و بدانید خداوند از هر چیزی آگاه است و از نیات کسانی که از قوانین او سوء استفاده می‌کنند خبر است و اذا طلقتم فبلغن اجلهن فلا فلا تعضنوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله و, و هنگامی که زنان را طلاق دادید و عده خود را به پایان رساندند مانع آنها نشوید که با همسران سابق خیش ازدواج کنند اگر در میان آنان به طرز پسندیده‌ای ترازی برقرار کردند این دستوری است که تنها افرادی از شما که ایمان به خدا و روز قیامت دارند از آن پند میگیرند و به آن عمل میکنند. این دستور برای رشد خانواده های شما موثرتر و برای شستن آلودگی ها مفید تر است و خدا میداند و شما نمیدانید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 فرزندان خود را دو سال تمام شیر می دهند. این برای کسی است که بخواهد دوران شیرخارگی را تکمیل کند و بران کس که فرزند برای او متولد شده لازم است خوراک و پوشاک مادر را به طور شایسته در مدت شیر دادن بپردازد حتی اگر طلاق گرفته باشد هیچ کس. موظف به بیش از مقدار توانایی خود نیست. نه مادر به خاطر اختلاف با پدر حق ضرر زدن به کودک را دارد و نه پدر و بر او نیز لازم است این کار را انجام دهند. و اگر آن دو با رضایت یکدیگر و مشورت بخواهند کودک را زودتر از شیر باز گیرند گناهی بر آنها نیست. و اگر خواستید دایعی برای فرزندان خود بگیرید گناهی بر شما نیست به شرط اینکه حق گذشته مادر را به طور شایسته بپردازید و از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید و بدانید خدا به آنچه انجام می دهید بیناست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 فلا جناح عليكم فيما في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. و کسانی که از شما میمیرند و همسرانی باقی میگذارند باید چهار ماه و ده روز انتظار بکشند و عده نگهدارند. و هندامی که به آخر مدتشان رسیدند، گناهی بر شما نیست که هرچه میخواهند می‌خواهند درباره‌ی خودشان به طور شایسته انجام دهند و با مرد دلخواه خود ازدواج کنند و خدا به آنچه عمل میکنید آگاه است ولا جناحه علیکم فیما عرضتم به من خطبه او اکننتم او اكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهم ولكن لا توعدوهم سرا الا الا ان تقولوا قولا عرفا ولا تعزموا عقده نکاح حتى يبلغ الكتاب أجله وعلم ان الله علم و مفی ان فظکن فذرو وعلم الله آافورونحلیم و گناهی بر شما نیست که به طور کنایه از زنانی که همسرانشان مرداند خواستگاری کنید و یا در دل تصمیم بر این کار بگیرید بدون اینکه آن را اظهار کنید. خداوند میدانست شما به یاد آنها خواهید افتاد ولی پنهانی با آنها قرار زناشویی نگذارید مگر اینکه به طرز ای به طور کنایه اظهار کنید ولی در هر حال اقدام به ازدواج ننمایید تا عده آنها سرایت و بدانید خداوند آنچه را در دل دارید میداند از مخالفت او بپرهیزید و بدانید خداوند آمرزنده و بردبار است لا جناح علیکم این طلقتمون نساء ما لم تمسوهن او تفرضوا أو تفرضو لهن فریضه و مدعوهن علی الموسع قدره و علی المقدر قدره متاعا متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین اگر زنان را قبل از آمیزش جنسی یا تعیین مهر به عللی طلاق دهید گناهی بر شما نیست و در این موقع آنها را با حدیه مناسب بحرمند سازید آن کس که توانایی دارد به اندازه تواناییش و آنکس که تنگ دست است به اندازه خودش هدیه شایسته بدهد. و این بر نیکوکاران الزامی است. وَإِنْ طَلَقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّهُنَّ وَقَدْ ثَرَدْتُمْ وَقَدْ ثَرَدْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا ثَرَدْتُمْ إلَّا إلَّا أن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةٌ نِكَاح وآ تفو اقاربون دقه ولادم سفضل بينک این الله ح بما عملون دصیم و اگر زنان را پیش از آن که با آنها تماس بگیرید و آمیزش جنسی کنید طلاق دهید در حالی که مهری برای آنها تعیین کرده اید لازم است. نصف آن که را تعیین کرده اید به آنها بدهید مگر اینکه آنها حق خود را ببخشند یا آنکس کس که گره ازدواج به دست اوست آن را ببخشد و گذشت کردن شما و بخشیدن تمام مهر به آنها به پرهیزگاری نزدیکتر است و گذشت و نیکوکاری را در میان خود فراموش نکنید که خداوند به آنچه انجام می دهید بیناست علی الصلوات و الوسطى و قومو لله در انجام همه نمازها و به خصوص نماز وستا نماز ظهر کوشا باشید و از روی خضوع و اطاعت برای خدا بپاخیزید فان خفتم فرجالا الله كما لم تكونوا تعلمون و اگر به خاطر جنگ یا خطر دیگری ترسید نماز را در حال پیاده یا سوار انجام دهید اما هنگامی که امنیت خود را بازیافتید خدا را یاد کنید همان گونه که خداوند چیزها ای را که نمیدانستید به شما تعلیم داد والذین يتوفون منكم ويذرون ازواجا ووصيه لازواجهم متاعا متاعا الى الحول غير اخراج فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلَّ فِي أَنفُسِهِنَّ من معروف والله وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَكِيمٌ و کسانی که از شما در آستانه مرگ قرار میگیرند و همسرانی از خود به جا میگذارند باید برای همسران خود وسیعت کنند که تا یک سال آنها را با پرداختن هزینه زندگی بحرمن سازند به شرط اینکه آنها از خانه شوهر بیرون نروند و اقدام به ازدواج مجدد نکنند و اگر بیرون روند حقی در هزینه ندارند ولی گناهی بر شما نیست نسبت به آن چه درباره خود به طور شایسته انجام میدهند و خداوند توانا و حکیم است وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقین و برای زنان مطلقه هدیه مناسبی لازم است که از طرف شوهر پرداخت گردد این حقی است بر مردان پرهیزگار كذلك بین الله لكم ته لعلكم تعقلوناینچنین خداوند آیات خود را برای شما شرح میدهد شاید اندیشه کنید الم تر الى الذین خرجوا من دیارهم و هم علوف حذر الموت فقال لهم الله فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن الناس لا آیا ندیدی جمعیتی را که از ترس مرگ از خانه های خود فرار کردند و آنان هزارها نفر بودند خداوند به آنها گفت می‌میرید سپس خدا آنها را زنده کرد خداوند نسبت به بندگان خود احسان میکند ولی بیشتر مردم شکر او را به جا نمی آبند. و فی سبیل الله و ان الله علیم و در راه خدا پیکار کنید و بدانید خداوند شنوا و داناست من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط اليه ترجعون چیست که به خدا قرض الحسن ایدهد تا آن را برای او چندین برابر کند و خداوند است که روزی بندگان را محدود یا گسترده میسازد و به سوی او بازگردانده میشوید شوید الم تر ایل الملع من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالو اذ قالو لنبی لهم ابعث لنا ملکا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قال هل نسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا وقد اخرجنا من ديارنا وأبنائنا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ آیا مشاهده نکردی جمعی از بنی اسرائیل را بعد از موسا که به پیامبر خود گفتند زمامدار و فرماندهی برای ما انتخاب کن تا زیر فرمان او در راه خدا پیکار کنیم پیامبر آنها گفت شاید اگر دستور پیکار به شما داده شود سرپیچی کنید و در راه خدا جهاد و پیکار نکنید گفتند چگونه ممکن است در راه خدا پیکار نکنیم در حالی که از خانه ها و فرزندانمان رانده شده ایم؟ اما هنگامی که دستور پیکار به آنها داده شد جز اده کمی از آنان همه سرپیچی کردند و خداوند از ستمکاران آگاه است. وقال لهم نبيهم این الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطا في العلم والجسم والله يؤتيم ملكه من يشاء والله واسع عليم. و پیامبرشان به آنها گفت خداوند تالوت را برای زمامداری شما مبút کرده است. گفتند چگونه او بر ما حکومت کند با اینکه ما از او شایسته تریم و او ثروت زیادی ندارد گفت خدا او را بر شما برگزیده و او را در علم و قدرت جسم وسعت بخشیده است خداوند ملکش را به هر کس بخواهد میبخشد و احسان خداوند وسیع است و از لیاقت افراد برای منصبها All God has. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَتَمُ الْكِتَابِ أَيَاتِ يَقُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِيلَةٌ مِّرُّ رَبِّكُمْ وَبَقِيَةٌ وَبَقِيَةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ این نفی این کنتم مؤمنین و پیامبرشان به آنها گفت نشانه حکومت او این است که صندوق عهد به سوی شما خواهد آمد همان صندوقی که در آن آرامشی از پروردگار شما و یادگارهای خاندان موسا و هارون قرار دارد در حالی که فرشتگان آن را حمل می کنند در این موضوع نشانه ای روشن برای شماست اگر ایمان داشته باشید فلما فصل طالوت بالجنود قال این الله مبتلیکن بنهر نهر فمن شرب منه فلیس منی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 قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أن لهم لا الله كم من فئة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله و هنگامی که تالوت به فرماندهی لشکر بنی اسرائیل منصوب شد و سپاهیان را با خود بیرون برد به آنها گفت خداوند شما را به وسیله یک نهر آب آزمایش می کند آنها که از آن بنوشند از من نیستند و آنها که جز یک پیمان با دست خود بیشتر از آن نخورند از من هستند پس جز اده کمی همگی از آن آب نوشیدند سپس هنگامی که او و افرادی که با او ایمان آورده بودند و از بوته آزمایش سالم بدرآمدند، از آن نهر گذشتند گفتند امروز ما توانایی مقابله با جالوت و سپاهیان او را نداریم اما آنها که می خدا را ملاقات خواهند کرد گفتند چه بسیار گروه های کوچکی که به فرمان خدا بر گروه های عظیمی پیروز شدند و خداوند با سابران و استقامت کنندگان است و قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَهنگامی که در برابر جالوت و سپاهیان او قرار گرفتند گفتند پروردگارا پیمانه شکیبایی و استقامت را بر ما بریز و قدم ما را ثابت بدار و ما را بر جمعیت کافران پیروز بگردان فهزموهم هم اذن الله فهزموهم هم اذن الله و قتل داود جالوت و الله سپس الله الملك وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن, ولكن الله فضل على العالمين بفرمان خدا آنها سپاه دشمن را به حضیمت واداشتند و داوود نوجوان نیرومند و شجاعی که در لشکر تالوت بود جالوت را کشت و خداوند حکومت و دانش را به او بخشید و از آنچه میخواست به او تعلیم داد و اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفت نمی زمین را فساد فرا می گرفت ولی خداوند نسبت به جهانیان لطف و احسان دارد. ذینکا آیات الله نتلوها علیک بالحق و ان دکلمن المرسلین اینها آیات خداست که به حق بر تو می و تو از رسولان ما هستی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 ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم من بعد ما جاءتهم البيانات ولكن, ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر و شاء الله مقتتل ولیکن الله يفعل ما يريد. بعضی از آن رسولان را بر بعضی دیگر برتری دادیم برخی از آنها خدا با او سخن می گفت و بعضی را درجاتی برتر داد و به عیسی ابن مریم نشانه های روشن دادیم و او را با روح القدس نمودیم و اگر خدا می‌خواست کسانی که بعد از آنها بودند پس از آن همه های روشن که برای آنها آمد جنگ و ستیز نمی‌کردند ولی این ها بودند که با هم اختلاف کردند بعضی ایمان آوردند و بعضی کافر شدند اگر خدا می‌خواست با هم پیکار نمی‌کردند ولی خداوند آنچه را میخواهد از روی حکمت انجام میکند. <سؤال> يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم أنفقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي يوم لا ديع فيه ولا خله لا ولا ولا شفاعه هم ای کسانی که ایمان آورده اید از آنکه به شما روزی داده این انفاق کنید پیش از آنکه روزی فرار که در آن نه خرید و فروش است و نه دوستی و نه شفاعت و کافران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 هیچ معبودی نیست جز خداوند یگانه زنده که قائم به ذات خیش است و موجودات دیگر قائم به او هستند هیچگاه خواب سبک و سندینی او را فرا نمیگیرد آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از ازان اوست کیست که در نزد او جز به فرمان او شفاعت کند آنچه در پیش روی آنها و پشت سرشان است میداند و کسی از علم او آگاه نمیگردد جز به مقداری که او بخواهد تخت حکومت او آسمان ها و زمین را در بر گرفته و نگاهداری آن دو او را خسته نمی کند بلندی مقام و عظمت مخصوص اوست لا اکراه فی الدین قد تبين الرشد من الغي فمن يكثر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقا لن انفصام لها والله سميع عليم در قبول دین اکراهی نیست زیرا راه درست از راه انحرافی روشن شده است بنابر این کسی که به تاقوت کافر شود و به خدا ایمان آورد به دستگیره محکمی چنگ زده است که گسستن برای آن نیست و خداوند شنوا و داناست الله ولی الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاء هم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فیها خالدون خداوند ولی و سرپرست كسانی است که ایمان آوردند آنها را از ظلمتها به سوی نور بیرون میبرد اما کسانی که کافر شدند اولیای آنها تاقوت ها هستند که آنها را از نور به سوی ظلمت ها بیرون می برند. آنها اهل آتشند و همیشه در آن خواهند ماند. اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَجَّ إِبَرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ اَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكِ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 والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا ندیدی کسی که با ابراهیم درباره پروردگارش مهاجره و گفتگو کرد زیرا خداوند به او حکومت داده بود هنگامی که ابراهیم گفت خدای من آن کسی است که زنده میکند و میمیراند او گفت من نیز زنده می کنم و میمیرانم. ابراهیم گفت خداوند خورشید را از افق مشرق میآورد خورشید را از مغرب بیاور. در اینجا آن مرد کافر مبهوت و وامانده شد و خداوند قوم ستمگر را هدایت نمی کند أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال ان لا يحيي هذه الا الله بعد موتها فاماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم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 فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء یا <تصفيق> همانند کسی که از کنار یک آبادی ویران شده عبور کرد در حالی که دیوارهای آن به روی سقف ها فرو ریخته بود و اجساد و استخوانهای اهل آن در هر سو پراکنده بود او با خود گفت چگونه خدا اینها را پس از مرگ زنده می میکند در این هنگام خدا او را یکصد سال میراند سپس زنده کرد و به او گفت چقدر درنگ کردی گفت یک روز یا بخشی از یک روز فرمود نه بلکه یکصد سال درنگ کردی نگاه کن به قضا و نوشیدنی خود که همراه داشتی با گذشت سالها هیچ گونه تغییر نیافته است ولی به علاق خود نگاه کن که چگونه از هم متلاشی شده این زنده شدن تو پس از مرگ هم برای اطمینان خاطر توست و هم برای اینکه تو را نشانه ای برای مردم در مورد معاد قرار دهیم. اکنون به استخوانهای مرکب سواری خود نگاه کن که چگونه آنها را برداشته به هم پیوند میدهیم و گوشت بر آن می پوشانیم. هنگامی که این حقایق بر او آشکار شد گفت میدانم خدا بر هر کاری تواناست.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 ثم اجعل على كل جبل منهم جزءا ثم ادعه ياتيك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم و به بیاور هنگامی را که ابراهیم گفت خدایا به من نشان بده چگونه مردگان را زنده میکنی فرمود مگر ایمان نیاورده ای ارز کرد چرا ولی میخواهم قلبم آرامش یابد فرمود در این صورت چهار نو از مرگان را انتخاب کن و آنها را پس از زیر کردن قطع قطع کن و در هم بیامیز سپس بر هر کوهی قسمتی از آن را قرار بده بعد آنها را بخان به سرعت به سوی تو می آیند و بدان خداوند قادر و حکیم است مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت انبتت سبع سنابل في كل سنبله مئة حبه والله الله لمن و کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند همانند بذری هستند که هفت خوشه برویاند که در هر خوشه یک دانه باشد و خداوند آن را برای هر کس بخواهد دو یا چند برابر می کند و خدا از نظر قدرت و رحمت وسیع و به همه چیز داناست الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا أذلهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون کساني که اموال خود را در راه خدا انفاق میکنند سپس بدون بال انفاقی که کرده اند منت نمیگذارند و آزاری نمیرسانند پاداش آنها نزد پروردگارشان محفوظ است و نه ترسی دارند و نه قمگیم میشوند. قول معروف و مغفرت خیر من صدقتی یتبعها اذا والله غنی حلیم گفتار پسندیده در برابر نیازمندان و عفو گذشت از خشونتهای آنها از بخششی که آزاری به دنبال آن باشد بهتر است و خداوند بی نیاز و بردبار است یا ایوها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنی والعذا الذي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 لا يهدي القوم ای کسانی که ایمان آورده اید بخشش های خود را با منت و آزار باطل نسازید همانند کسی که مال خود را برای نشان دادن به مردم انفاق می و به خدا و روز رستاخیز ایمان نمی آورد کار او همچون قطع سنگیست که بر آن قشر نازکی از خاک باشند و بذرهایی در آن شود و رگبار باران به آن برسد و همه خاک ها و بذرها را بشوید و آن را صاف و خالی از خاک و بذر رها کند آنها از کاری که انجام دادند چیزی به دست نمی آورند و خداوند جمعیت کافران را هدایت لا يمننند ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة اصابها, اصابها وابل فاتت اكلها ضعفين فان لم يصبها فَإِنْ لم يُصِبَهَا وابل فطل والله بما تعملون بَصِيرٌ و کار کسانی که اموال خود را برای خوشنودی خدا و تثبیت ملکات انسانی در روح خود انفاق می کنند همچون باقیست است که در نقطه بلندی باشد و بارانهای های به آن برسد. و از هوای آزاد و نور آفتاب به حد کافی بهره گیرد و میوه خود را دوچندان دهد که همیشه شاداب و با تراوت است و اگر باران درشت به آن نرسد بارانی نرم به آن میرسد و خداوند به آن چه انجام میدهید بیناست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 وا الكبر و له ذريه ضعفاء فاصابها فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الايات ان لكم تتفكرون اايا كسي از شما دوست دارد که باغي از درختان خرما و انگور داشته باشند که از زیر درختان آن نهرها بوگزرد و برای او در آن باغ از هر گونه میوه ای وجود داشته باشد در حالی که به سن پیری رسیده و فرزندانی کوچک و ضعیف دارد در این هنگام گردبادی کوبنده که در آن آتش است به آن برخورد کند و شعله برگردد و بسوزند؟ این چنین خداوند آیات خود را برای شما آشکار می‌سازد. شاید بیندیشید يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طیبات ما كسبتم أنفقوا من طیبات ما كسبتم و مما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولست باخذه الا الله ولست باخذه الا ان تغمضوا فيه وعلموا ان الله غني حميد اي كساني که ایمان آورده اید از قسمتهای های پاکیزه اموالی که به دستاورده و از آنچه از زمین برای شما خارج ساخت این انفاق کنید و برای انفاق به سراغ قسمتهای ناپاک نروید در حالی که خود شما به هنگام پذیرش اموال حاضر نیستید آنها را بپذیرید مگر از روی اقماز و کراحت و بدانید خداوند بی آزو شایسته ستایش است شیطان یعیدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء والله یعیدکم مغفرة منه وفضلا والله واسع علیم شما را به هنگام انفاق وعده فقر و تهیدستی میدهد و به فحش و زشتی ها امر میکند. ولی خداوند وعده آمرزش و فزونی به شما میدهد. و خداوند قدرتش وسیع و به هر چیز داناست <تصفيق> و من یعتل حکمت فقد اوتي خیرا کثیرا و ما یذکر الا اونو خدا دانش و حکمت را به هر کس بخواهد و شایسته بداند میدهد و به هر کس دانش داده شود خیر فرابانی داده شده است و جز خردمندان متذکر نمیگردن و ما انفقت منفقت آنذر من فا إن الله يعلم وما للظالمين من أنصار. و هر چیز را که انفاق میکنید یا اموالی را که نظر کرده اید در راه خدا انفاق کنید خداوند آنها را میداند و ستمگران یاوری ندارند ان تُبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير اگر انفاق ها را آشکار کنید خوب است و اگر آنها را مخفی ساخته و به نیازمندان بدهید برای شما بهتر است و قسمتی از گناهان شما را میپوشاند و خداوند به آنچه انجام میدهید آگاه است لیس علی هداهم ولن الله یهدی من یشاء و ما تنفقون تنفقو إلا بتغاء وجه الله و ما تنفقون من خیر وفع هدایت آنها به طور اجبار بر نیست ولی خداوند هر را بخواهد و شایسته بداند هدایت می کند و آنچه را از خوبی ها و اموال انفاق می کنید برای خودتان است ولی جز برای رضای خدا انفاق نکنید. و آنچه از خوبی ها انفاق می کنید پاداش آن به طور کامل به شما داده می شود و به شما ستم نخواهد شد. للفقرة الذين أحصر في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعف في تعريفهم بسيماهم تعريفهم لا يسألون لا و من فإن الله انفاق شما مخصوصا باید برای نیازمندانی باشد که در راه خدا در تنگنا قرار گرفتهاند. نمی توانند مسافرتی کنند و سرمایه ای به دست و از شدت خیشتنداری افراد ناآگاه، آنها را بی نیاز اما آنها را از چهره هایشان می شناسی و هرگز با اصرار چیزی از مردم نمیخواهند. و هر چیز خوبی در راه خدا انفاق کنید، خداوند از آن آگاه است. الذین ينفقون أموالهم باللیل والنهار سررا واعلانیة فلهم, فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف علهم ولا هم آنها که اموال خود را شب و روز پنهان و آشکار انفاق میکنند مزدشان نزد پروردگارشان است نه ترسی بر و نه غمگین میشوند الذین يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذی تخبطه الشطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا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 کسانی که ربا میخورند در قیامت بر نمی خیزند مگر مانند کسی که بر اثر تماس شیطان دیوانه شده و نمیتواند تعادل خود را حفظ کند گاهی زمین میخورد، گاهی بپا می خیزد این به خاطر آن است که گفتند داد و ستد هم مانند رباست و تفاوتی میان آن دو نیست در حالی که خدا بی را حلال کرده و ربا را حرام زیرا فرق میان این دو بسیار است و اگر کسی اندرز الهی به او رسد و از رباخاری خود داری کند سودهایی که در سابق قبل از نزول حکم تحریم به دست آورده مال اوست و این حکم گذشته را شامل نمیگردد. و کار او به خدا واگذار می شود و گذشته او را خواهد بخشید. اما کسانی که بازگردند و بار دیگر مرتکب این گناه شوند اهل آتشند و همیشه در آن می مانند. الله الربا الرّبا الصدقات والله لا يحب كل كثار خداوند ربارا نابود می کند و صدقات را افزایش می دهد و خداوند هیچ انسان ناس پاس گناهکاری را دوست نمی دارد این الذين آمنوا و عملوا الصالحات و اقاموا الصلاة و آدم الزکاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند و نماز را برپا داشتند و زکات را پرداختند اجرشان نزد پروردگارشان است و نه ترسی بر آنهاست و نه غمگین میشوند یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله و ما بقی من الربا این کنتم مؤمنین ای کسانی که ایمان آورده اید از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید و آنچه از مطالبات ربا باقی مانده رها کنید اگر ایمان دارید فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ اگر چونین نمی بدانید خدا و رسولش با شما پیکار خواهند کرد و اگر توبه کنید سرمایه های شما از آن شماست نه ستم میکنید و نه بر شما ستم وارد می شود و این ذو عسره فنظره الی میسره و ان تصدقو خیرلکم کنتم و اگر بدهکار قدرت پرداخت نداشته باشد او را تا هنگام توانایی مهلت دهید و در صورتی که به راستی قدرت پرداخت را ندارد برای خدا به او ببخشی بهتر است اگر بدانید وتتقو یوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون و از روزی بپرهیزید و بترسید که در آن روز شما را به سوی خدا باز می‌گردانند سپس به هر کس آنچه انجام داده به طور کامل باز پس داده می‌شود و به آنها ستم نخواهد شد يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسم فكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يابى كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليم للذي عليه الحق وليتق الله ربّه ولا يبخس منه شيئاً فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفاً أو لا يستطيع أَوْ لا يستطيع أيّ من له فليمل بالعدل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 ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم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 والله ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که بدهی مدت داری به خاطر وام یا داد و ستد به یک دیگر پیدا کنید آن را بنویسید و باید نویسنده از روی عدالت سند را در میان شما بنویسد و کسی که قدرت بر نویسندگی دارد نباید از نوشتن همانطور که خدا به او تعلیم داده خودداری کند، پس باید بنویسد، و آنکس کس که حق بر عهده اوست باید املا کند، و از خدا که پروردگار اوست بپرهیزد و چیزی را فرو گذار ننماید، و اگر کسی که حق بر زمه اوست، صفیح یا از نظر عقل ضعیف و مجنون است، یا به خاطر لال بودن توانایی بر املا کردن ندارد باید ولی او به جای او با رعایت عدالت املا کند و دو نفر از مردان عادل خود را بر این حق شاهد بگیرید و اگر دو مرد نبودند یک مرد و دو زن از کسانی که مورد رضایت و اطمینان شما هستند انتخاب کنید و این دو زن باید با هم شاهد قرار گیرند تا اگر یکی انحرافی یافت دیگری به او یادآوری کند و شهود نباید به هنگامی که آنها را برای شهادت دعوت میکنند خودداری نمایند و از نوشتن بدهی خود چه کوچک باشد یا بزرگ ملول نشوید هرچه چه باشد بنویسید این در نزد خدا به عدالت نزدیکتر و برای شهادت مستقیمتر و برای جلوگیری از تردید و شک و نزاع و گفتگو بهتر میباشد مگر اینکه داد و ستد نقدی باشد که بین خود دست به دست میکنید در این صورت گناهی بر شما نیست که آن را ننویسید ولی هنگامی که خرید و فروش نقدی میکنید شاهد بگیرید و نباید به نویسنده و شاهد به خاطر حقگوی زیانی برسد و تحت فشار قرار گیرند و اگر چنین کنید از فرمان پروردگار خارج شده اید از خدا بپرهیزید و خداوند به شما تعلیم می دهد. خداوند به همه چیز داناست وإن كنتم على سفرٍ ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضه فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدي الذيء من أمانته واليتقى الله ربّه ولا تكتموا الشهادة وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ أَثَمُّ قَلْبُهُ و الله بما تعملون علیم و اگر در سفر بودید و نویسنده ای نیافتید گروگان بگیرید گروگانی که در اختیار تلبکار قرار گیرد و اگر به یکدیگر اطمینان کامل داشته باشید گروگان لازم نیست و باید کسی که امین شمرده شده و بدون گروگان چیزی از دیگری گرفته امانت و بدهی خود را به موقع بپردازد و از خدایی که پروردگار اوست بپرهیزد و شهادت را کتمان نکنید و هر کس آن را کتمان کند قلبش گناهکار است و خداوند به آنچه انجام میدهید داناست لله ما في السماوات و ما فی وَإِنْ تُبْدُو مَا فِي أَنفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آنچه در آسمان هاب و زمین است، ازام خداست و از این رو اگر آنچه را در دل دارید، آشکار سازید یا پنهان، خداوند شما را بر طبق آن محاسبه می کند. سپس هر کس را بخواهد و شایستگی داشته باشد میبخشد و هر کس را بخواهد و مستحق باشد مجازات می کند و خداوند به همه چیز قدرت دارد.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 پیامبر به آنچه از سوی پروردگارش بر او نازل شده ایمان آورده است و همه مؤمنان نیز به خدا و فرشتگان او و کتابها و فرستادگانش ایمان آورده اند. و می‌گویند ما در میان هیچیک از پیامبران او فرق نمی‌گذاریم و به همه ایمان داریم و مؤمنان گفتند ما شنیدیم و اطاعت کردیم فروردگارا انتظار آمرزش تو را داریم و بازگشت ما به سوی توست لا یکلیف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت و عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن لسینا او أخطأنا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 خداوند مولانا فانصرنا على القوم هیچ کس را جز به اندازه تواناییش تکلیف نمی کند انسان هر کار نیکی را انجام دهد برای خود انجام داده و هر کار بدی کند به زیان خود کرده است مؤمنان میگویند، پروردگارا، اگر ما فراموش یا خطا کردیم، ما را معاخز مکن پروردگارا، تکلیف سنگینی بر ما قرار مده، آنچنان که به خاطر گناه و تقیان بر کسانی که پیش از ما بودند قرار دادی پروردگارا، آنچه طاقت تحمل آن را نداریم، بر ما مقرر مدار و آثار گناه را از ما بشوی و ما را ببخش و در رحمت خود قرار ده تو مولا و سرپرست مایی پس ما را بر جمعیت کافران پیروز گردان